به سر جامجم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکد کهل بسر توانی کرد مباش بیمه و مطرب که زیر تاغ سپهر بدین دین تران قم از دل به در توانی کرد گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید که خدمتش چون نسیم سهر توانی کرد گدائی در میخانه ترف اکسیری است گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی ار این سفر توانی کرد تو که سرای طبیعت نمی روی بیرون کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد جمالیار ندارد نقاب و پرده ولی قبار ره بنشن تا نظر توانی کرد بیا که چاره زوق حضور و نظم امور به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد ولی تو طالب معشوق و جام میخواهی تمعمدار که کار دیگر توانی کرد دلا نور هدایت گراگه یابی چو شام خنده زنان ترک سر توانی کرد گر این نصیحت شاهان بشنوی حافظ به شاه راه حقیقت گذر توانی کرد